جن خودخوا نوشته یا ریچارد داکینز فصل دهم ده تو پشتم را می من پشتت سوار می شدم. بخش یکم ما برهم کنش پدر مادرانه جنسی و تهاجمی را بین ماشین های بقا در یک گونه مورد ملاحظه قرار دادیم بعضی جنبه های درخوره توجه برهمکنش بین حیوانات را نمی تواند. به راحتی تحت این عنوان ها بندی کرد یکی از آن گرایش ها به زندگی گروهی است که در بسیاری حیوانات دیده می شود فوج پرنده ها موج حشره، ها، دسته های ماهی ها و نهنگ ها و گله های پسنداران ساکن جگاه با هم زندگی می کنند و با هم به شکار می دوند. این با هم جمع شدن ها معمولا فقط در اعضای یک گونه واحد صورت می گیرد. اما استثناء هم وجود دارد. غالبا گرخر و گاوهای وحشی با هم را و گاهی فاوچ شامل گناهی مختلف پرنده دیده می شوند. در مورد منوفی که از زندگی در جمع برای یک فرد خودخواه حاصل می شود، نظرهای زیادی اظهار شده که سیاهی آن را شامل ارقام مختلفی می کند. من نمیخواهم در مورد همه آنها صحبت کنم ولی فقط به چند نظر اشاره می کنم. به این جهت بر به باقی نمونه هایی که به رفتار به ظاهر ایسارگرانه در فصل یکم مربوط می شود و قول داده بودم دربارهشان توضیح دهم. این توضیح توجهی را نسبت به حشرات اجتماعی در ما به وجود می آورد که بدون آن هیچ توضیحی در مورد ایسارگری حیوانات کامل نیست و سرانجام در این فصل نسبتاً متنوع به بیان مفهوم با اهمیت ایثارگری دو جانبه می میپردازم این است که تو پشت مرا میخارانی من پشت تو را وقتی حیوانات به صورت جمعی با هم زندگی میکنند باید از این جمع شدم به ژنهایشان سودی برسد یک دسته کفتار میتوانند طعمهی خیلی بزرگتری را شکار کنند تا یک کفتار تنها گرچه در این صورت غذای به دست آمده تقسیم می شود. اعتمالاً به دلیل مشابهی بعضی انکبوت ها با هم در ساختن یک تار بسیار بزرگ همگانی مشارکت می کنند. پنگوان های امپراتور با چسبیدن به یکدیگر گرما را حفظ می کنند. این به نفع هر کدام آنهاست که به جای اینکه تنها باشند کمی به افراد گروه بدهند. آن ماهی که کج کج دنبال ماهی های دیگر راه میافتد، شاید از نظر هیدرودینامیک از ططی که ماهی های جلوی در آب ایجاد کردن سودی میبرد. همین می تواند دلیل حرکت گروهی ماهیا باشد. مشابه به این کلک را که استفاده از آشفتگی حواست در مسابق های دوچرخ سواری دیدم. و شاید به همین دلیل است که پرندگان در جابجایی به, به شکل وی پرواز می احتمالاً احتمالا در افراد گروهی که در پروازند این رقابت وجود دارد. که در جایگاه نخست که امتیازی ندارد قرار نگیرند. شاید مجبورند با دلخوری هم که شده به نوبت عنوان رهبری را بپذیرند. این یک نوع ایسارگری دو با تأخیر است که در آخر این فصل مورد بحث قرار میگیرد. بسیاری از منافعی که برای زندگی دست جمعی برش شده به پرهیز از خورده شدم توسط شکارگران مربوط می شود همیلتون؟ انجاربندی دقیقی از چنین نظریه‌ای را در مقالی به نام هندسه گله خودخواه ارائه کرده است برای اینکه این عنوان موجب کج‌فهمی نشود باید تاکید کنم منظور وی از گله خودخواه گله افراد خودخواه است یک بار دیگر مدل ساده‌ای شروع می‌کنیم که گرچه انتزایی است ولی به ما در درک دنیای واقعی کمک می‌کند فرض کنید یک گونه جانور توسط شکارگری شکار شده است که همیشه به نزدیکترین تعمه حمله می کند. از دیدگاه آن شکارگر این راهبرد عاقلانه است زیرا در مصرف انرژی می میشود از دیدگاه تعمهٔ او هم پیامد جالبی دارد به این معنی که هر تعمهای مدام میکوشد از اینکه نزدیکترین فرد به شکارگر باشد اجتناب کند اگر تومه از فاصله دور شکارگر را تشخیص دهد، خیلی راحت پا به فرار می‌گذارد. اما اگر شکارگر یک دفعه سر و کلش پیدا شود و بدون سر و صدا مثلا درون الفها کمین کرده باشد، در آن صورت باز هر تومه باید احتمال نزدیکتر بودن به شکارچی را حتی الامکان کم کند. ما اینطور مجسم می کنیم که هر تومه در وسط یک حوزه خطر قرار گرفته است، منظور محدوده از زمین است که هر نقطه اش با آن تعمه خاص نزدیکتر است تا با افراد دیگر. برای مثال، اگر آن تعمه که با هم راه افتادند فاصلشا با هم یک شکل منظم هندسی داشته باشد خوضه خطری که در اطراف هر کدام به جزان که در هاشی از قرار دارد کم و بیش میتواند از نظر شکل تقریبا یک هشت وجهی باشد. اگر شکارگر در آن هشت وجهی که حوزه خطر ای است کمین کرده باشد احتمالاً ای را نوشجان می کند افرادی که در هاشیه گله قرار دارند، بیشتر آسیب پذیرند، چون محدوده خطر آنها یک هشت ورشی نسبتاً کوچک نیست بلکه از طرف آن زلی که باز است منطقه وسیعی را شامل می شود اما هر فرد عاقل سعی می کند حوزه خطر خود را حدالامکان امکان کوچک کند به ویژه می از قرار گرفتن در حاشیه بپرهیزد اگر متوجه شود در حاشیه قرار گرفته فورا کاری میکند که به سمت داخل برود متاسفانه بالاخره یک فرد باید در حاشیه قرار گیرد و هر فرد فکر میکند آن موجود خودش نباید باشد مدام یک جابجایی از حاشیه به سوی داخل تجمع وجود دارد و در نتیجه این مهاجرت درونی است که اگر گلهی قبلا پراکنده و پخش و پلا بوده، به زودی کاملا شکل می گیرد و منسجم می شود. حتی اگر ما مدل خود را طوری شروع کنیم که در آن هیچ گرایشی به تجمع نباشد و هر تعمه به طور تصادفی جایی قرار داشته باشد، فشار ناشی از خودخواهی هر فرد باعث می شود تلاش کند خود را در فضای خالی بین افراد جا دهد. و از حوزه خطر برای خود بکاهد و این به سرعت بنجر به تشکیل می میشود که به تدریج جمع و جورتر و متراکمتر میشود بدیهی است در زندگی واقعی فشارهای متقابلی وجود دارند که گرایش به تجمع را محدود میکنند اگر غیر از این بود افراد همه در یک توده درهم پیچیده گیر میافتادند اما با این حال این مدل جالب است زیرا نشان میدهد که حتی های بسیار ساده هم میتواند ها را پیشبینی کند بعضی های دیگر که پیشنهاد دقیق تر نیز هستند اینکه آنها به واقعیت نزدیکترند از ارزش مدل سادهی همیلتون در کمک به ما برای تعمل در موضوع تجمع حیوانات کم نمی کنند. در مدل گله خودخواه جایی برای برهمکنش هم یارانه نیست در اینجا از ایسارگری خبری نیست فقط صحبت از بهرهجویی خودخواهانه هر فرد از افراد دیگر است اما در زندگی واقعی مواردی وجود دارد که به نظر می رسد، افراد تلاش می کنند هم نوعان خود را از شکارگران مهاجم حفظ کنند این ما را به یاد فریادهای هوشدار پرنده ها می اندازد. نقش این کارها یقیناً مانند فریاد خبردهنده است زیرا باعث می شود افرادی که ها را میشنوند فورا فرار کنند منظورای نیست که دهنده سعی می کند نوک حمله شکارگر را متوجه خود کند و از هم ردیفانش آن را دور سازد او فقط به آنها خبر میدهد شکارگری وجود دارد و هوشیارشان میکند با وجود این دستکم در نگاه اول به نظر میرسد این هشداردهی با ایسارگری همراه است زیرا در نتیجه آن توجه شکارگر اول به خود هوشدار دهنده جلب می شود ما این را به صورت زمینی از روی واقعیتی که پ.ر. مارلر و آن پی برداشت می کنیم از نظر خصوصیات فیزیکی این فریاد هوشدار طوری شکل می گیرد که شناسایی محل آن مشکل باشد اگر از یک مهندس متخصص صوت بخواهند صدایی را طراحی کند که ردگیری آن برای شکارگر آسان نباشد او چیزی شبیه به فریاد هشدار بسیاری از این پرندگان کوچک آوازخوان خواهد ساخت اما در طبیعت شکلگیری این فریاد باید توسط انتخاب طبیعی انجام شده باشد و ما میدانیم این به چه معناست به این معناست که افراد بسیاری جان خود را از دست دادند چون فریادهای هشدارشان به اندازه کافی رسا نبوده است بنابراین گوی سردادن فریاد هشدار با خطرهایی همراه بوده است برای برتری فریادهایی که با رسایی مناسب میتواند با خطر مقابله کند نظریه ژن خودخواه باید توجیه قانع کننده ای داشته باشد در واقع کار بسیار مشکلی نیست فریاد هشدار پرنده ها بارها به عنوان یک چالش برای نظریه داروین مورد توجه قرار گرفت به طوری که تصور توضیحی برای آن به صورت یک سرگرمی درآمد. در نتیجه حالا ما چند توجیه خوب در مورد آن داریم. طوری که دیگر سخت به یاد میآوریم آن همه وسواس و دقت به خاطر چه بود؟ معلوم است وقتی در یک دسته پرنده این احتمال هست افراد خویشاوند هم باشند. جنی که برای سردادن فریاد هوشدار باشد موفق می شود زیرا به احتمال زیاد در بدن تعدادی از آن افراد نجات یافته وجود خواهد داشت حتی اگر آن فرد حشدار دهنده با جلب توجه شکارگر به خودش جان خود را در راه ایسارگری از دست بدهد باز همین قضیه صادق است اگر شما با نظر انتخاب خیشاوند موافق نباشید نظریه بسیاری دیگری هست که می توانید آنها را انتخاب کنید هشدار دهنده میتواند به روشهای گوناگونی با خبر کردن هم ردیفان خود به منافع خود برسد تریورس پنج مورد خوب را ذکر کرده است اما من این دو نظر خودم را در این مورد قانع کننده تر میدونم نظریه اول را که خطرنا میدهم نظریه به درد است این نظر در مورد پرنده های کنی که در وقت تهدید خطر درون بوته کز می کنند است. مجسم کنید یک دست از پرنده ها در زمینی در حال تغذیه باشند و آقابی آن بالا در فاصلهی در پرواز باشد. آقاب هنوز پرنده ها را ندیده و مستقیماً به طرف آنها نیامده باشد. اما هر لحظه این خطر وجود دارد که چشمان تیزش به آنها بیفتد و حمله کنان فرود بیاید. فرض کنید در حالی که بقیه هنوز متوجه نیستند، یکی از افراد گروه پرنده چشمش به اقاب می‌افتد. این پرنده تیز چشم فوراً خود را جمع می کند، سرش را پایین می‌آورد و میان علف کز می کند. ولی این کار برای او فایده چندانی ندارد، زیرا همراهان او هنوز پر سر و صدا و بیخیال این ورانبر می پرند. ممکن است هر کدام آنها توجه عقاب را جلب کنند و آنگاه همه فوج به خطر بیفتد از یک دیدگاه کاملا خودخواهانه بهترین سیاست برای فردی که اول عقاب را دیده این است که با یک فریاد هوشدار همراهان خود را باخبر کند تا به این ترتیب ساکت شوند و احتمال این را کاهش دهند که ناخواسته توجه عقاب را به جایی که هستند جلب کنند نظریه دیگری که می خواهم با آن اشاره کنم، نظریه که صفشکنی نکن است. این نظریه مناسب آن نوع از پرنده هاست که وقتی مهاجمی نزدیک شود، پرواز می کنند و دور می شود. مثلا می روی درخت؟ یک بار دیگر فرض کنید، از یک فوج فرنده که در حال تغذیه اند یکی متوجه شکارگری می شود. چه باید بکند؟ می تواند که به همراهانش هشدار دهد، فقط پرواز کند و برود. اما وقت میشود یک پرنده جدا افتاده دیگر عضو عادی از یک فوج پرنده نیست بلکه یک عضو تنها و غیر معمول است میگویند اقابا سراغ کبوترهای تک افتاده می‌روند حتی اگر این نظریه صحت نداشته باشد دلایل نظریه زیادی وجود دارد برای اینکه هم رنگ جماعت نبودن ممکن است سیاست نابود ای باشد حتی اگر در نهایت همراهان او هم در پیش بروند آن فردی که پیش از همه از زمین بلند می شود، حوزه خطر خود را افزایش داده است. چه این نظریه ماسو همیلتون درست باشد، چه نباشد. زندگی کردن در گروه باید با امتیازاتی همراه باشد. در غیر این صورت پرندگان به آن تن نمی دادند. این امتیاز هرچه باشد، آن فرد که زودتر از همه از دست جدا می شود تا حدی تاوانش را می پردستد. اگر آن پرنده که اول شکارگر را دیده پرواز نکند چه بکند؟ شاید او باید طوری که گویی چیزی ندیده به کارش ادامه دهد و روی حمایتی که از درون گروه بودن به دست میآورد تکیه کند. اما این کارم خطرات جدی به همراه دارد. او هنوز در فضای باز و در معرض خطر است در بالای یک درخت جایش ام خواهد بود در واقع بهترین کار این است که برود بالای درخت اما، باید مطمئن باشد که دیگران هم همین کار را می کنن. به این ترتیب دیگر یک عضو جدا افتاده و غیرعادی محسوب نمی شود و او به تنهایی تاوان امتیازی را که به هر عضو گروه می رسد نخواهد پرداخت بلکه از امتیاز پریدن به میان شاخهای درخت بهرهمند خواهد شد. بار دیگر تاکید می کنم که فریاد و امتیاز کاملا خودخواهانه ای را به همراه دارد. A.L. چارنو و V.J. کرپس نظریه مشابهی را ارائه کردند و در آن تا آنجا پیش می که برای آنچه هشدار دهنده نسبت به بقیه افراد دستش انجام می دهد، از واجه دستکاری استفاده می کنند. از ایسارگری خالص بیغرازان حسابی دور شده ایم. در ظاهر ممکن است این نظریه ها با این موضوع جور در نیاید که فرد هشتار دهنده خود را در معرض خطر قرار میدهد ولی در واقع هیچ ناسازگاری وجود ندارد اگر آن پرنده فریاد هشتار سر ندهد بیشتر در معرض خطر خواهد بود بعضی افراد به خاطر فریاد هشتار جان خود را از دست دادند مخصوصا آنها که تشخیص جای صدای فریاد شناس بود عده دیگر مردند چون فریاد هشتار سر ندادند نظریه خطر و نظریه سفشکنی نکن فقط دو نمونه از توضیحات زیادی است که علت را بیان می کنند. درباره آن آهوی تامسون پیشمرگ که در فصل یکم ذکر شد و خودکشی بظاهر ایسارگرانهٔ او که آردری را واداشت با قاطعیت بگوید فقط از طریق انتخاب گروه می شود علت را توضیح داد چه باید گفت در اینجا نظریه ژن خودخواه با چالش ظریفتری روبروست فریاد هوشدار پرنده بی تاثیر نیست ولی کاملا واضح است طوری طراحی یافته که حدل حد امکان بی جلب توجه عمل کند و مثل جهش های بلند آهو آشکار نباشد جهش های آهو خود نمایانه است و تا حدی به عمد توجه شکارگر را جلب می کند. به نظر می‌رسد آهوها شکارگر را به سوی خود فرا می خانند. تقریبا انگار می‌خواهند سر به سر شکارگر بگذارند این مشاهده منجر به نظریه ای شده که در آن بیباکی خوشهایم دیده می شود. در اصل مقدمه این نظریه را سماید چیده بود. ولی نتیجه منطقی از آن حاصل شده است بیچون و چرا امضای صحاوی را دارد. نظریه صحاوی را می توان چنین شرط داد. نکته مهم این تفکر جانبی مفهوم است که گذشته از علامت دادن به آهوهای دیگر در واقع همان شکارگر را هدف قرار می دهد آهوهای دیگر با دیدن آن علامت متناسب با آن عمل می کنن. اما این یک چیز جنبی زیرا هدف آن رفتا در واقع در درجه اول نوع علامت دادن به شکارگر است ترجمه دست و پا شکسته آن به زبان ما چنین می شود ببین چقدر بلند می پرم؟ معلومه که آهوی سالم و سرحالی هستم نمیتونی منو بگیری؟ باره اونای رو بگیر که نمیتونم مثل من بپرم؟ به زبانی که کمتر انسانی است یعنی احتمال اینکه ژن بلند و نمایشی پریدن قربانی شکارگر شبد وجود ندارد زیرا شکارگران طعمه‌های را ترجیح میدهند که گرفتن آنها آسان باشد به خصوص بسیاری از پستانداران شکارگر معروفند به اینکه دنبال توعمه های پیر و ضعیف میروند فردی که بالا میپرد و با اغراق خودنمایی میکند نه پیر است و نه ضعیف بر اساس این نظریه در این خودنمایی هیچ نوع ایسارگری وجود ندارد. در واقع اگر چیزی در آن باشد خودخواهیست. زیرا هدف آن این است که شکارگر را به سوی افراد دیگر براند. به عبارتی رقابتی است تا ببیند چه کسی بلندتر می پرد و بازنده آن است که نصیب شکارگر میشود. شود. نمونه دیگری که قرار بود به آن برگردم مورد زنبورهای های است، که به آنهایی که به اصل حجوم میبرند نیش میزنند. اما تقریبا همیشه در این راه جان خود را از دست میدهند. زنبور اصل تنها یک نمونه از هشراهای بسیار اجتماعی است. حشرای دیگر زنبور معمولی، مورچه، موریانه یا مرچه های من نه فقط از زنبورهای انتحاری بلکه از کل هشرات اجتماعی صحبت میکنم. از ماجرای حشرات اجتماعی داستان ها ساختند. به خصوص همکاری و ایسارگری آشکارشان حیرت آور است. معمولیت های نیشزنی انتحاری آنها نمونه اعلای از خودگذشتگی و ایسار است. در مورچه‌های اصلی یک طبقه کارگر وجود دارد که به نه عجیبی با شکمهایی پر از غذا باد کردند و تنها کارشان در زندگی این است که مثل حباب لامپ باد کرده از سقف آویزان باشند و به عنوان انبار غذا مورد استفاده کارگران دیگر قرار گیرند در مفهوم انسانی در واقع هستند زندگی نمی‌کنند فردیت آنها به خاطر رفاه جامعه آشکارا هویت خود را از دست داده است هر اجتماع مورچه زنبور یا موریانه به یک نوع فردیت در سطحی بالاتر می‌رسد غذا چنان تقسیم می‌شود که گویی صحبت از یک شکم اشتراکی است اطلاع توسط علئم شیمیایی با رغصهای معروف زنبورها طوری متناسب در اختیار همه قرار می گیرد که گویی همه یک واحدند و دارای یک نظام عصبی و اعضای حسی خاص خود هستند توسط چیزی که نظام واکنش ایمنی بدن برمیگزیند های خارجی شناسایی و پس رانده می‌شوند. گرچه زنبورها از جانوران خونگر نیستند دمای نسبتاً بالای درون کندوی اصل تقریبا با همان دقتی که در بدن انسان است تنظیم می شود در آخر و از همه مهمتر دامنه این قیاس به تولید مثل می رسد اکثر افرادی که پرگنه هشرای اجتماعی را تشکیل می کارگران سترون هستند مسیر تداوم ژن همیشه زنده یا مسیر و رودخانه نطفه از میان بدن گروه اقلیتی از افراد تولید مثل کننده میگذرد این افراد را با سلول های جنسی در بیزه و تخمدان ما انسان ها می توان مقایسه کرد کارگران سترون در حکم کبد ماهیچه و سلول عصبی ما هستند رفتار انتحاری و دیگر صورت های ایثارگری و همکاری کارگران برای ما تعجب نخواهد بود اگر این واقعیت را بپذیریم کاناسترون بدن یک جانور عادی طوری تنظیم می شود که بتواند از طریق زاداوری و از طریق مراقبت از افراد دیگر که دارای همان ژن هستم بقای ژن خود را تضمین کند. کشتن خود در راه مراقبت از افراد دیگر با زاداوری خود در آینده سازگار نیست. بنابراین، خودکشی ایثارگرانه به ندرت تکامل می‌یابد. اما یک زنبور کارگر هیچ زاده ای از خود ندارد. همه تلاش‌های او معطوف به نگهداری از ژن‌هایش از طریق مراقبت از خیشاوندان است که فرزند خودش نیستند مرگ یک زنبور کارگر سترون بیجفت برای ژنهایش همانقدر کم اهمیت است که افتادن یک برگ پاییزی برای ژن‌های یک درخت این تمایل وجود دارد که رج به اجتماعی افسانه پردازی کنیم. اما واقعا لزومی نداره ندارد چنین کاری بکنیم. بعد این ساعتی به تفصیل ببینیم نظریه ژن خودخوا چگونه با آن برخورد میکن و به ویژه اصل پیدایش پدیده غیر سترون بودن کارگران را که این همه داستان از آن نقل می شود چگونه در نظر می گیرد. پرگنه حشرات اجتماعی یک خانواده بسیار بزرگ است که معمولا همه افراد آن زاده های یک مادرن. کارگران که تولید مصر نمی کنند یا بهندرت می کنند خود به طبقات مختلفی تقسیم می شوند که کارگران کوچک، کارگران بزرگ، سربازان و طبقه کاملا تخصصی شدهای مانند اصلی ها از آن جملند. مادهی که تولید مصر می کنند ملکه نام دارد. به نرهایی که تولید مصر می کنند نر یا شاه میگویند. در اجتماع های پیشرفته تر آنها که تولید مثل می کنند هرگز کار دیگری غیر از آن انجام نمیدهند اما در آن یک کار بسیار خبرهند و از نظر غذا و نگهداری به کارگران وابستند به علاوه مسئولیت نگهداری از بچه ها هم به عهده کارگران است در بعضی از گونه های مرچه و موریانه ملکی بزرگ و باعت کرده تبدیل به یک کارخانه بزرگ تخم سازی می شود که اصلا به زحمت می شود آن را به عنوان یک حشره تشخیص داد اندازش. صدها برابر یک کارگر است و اصلا قادر به حرکت نیست کارگران مدام مواظبت هستند به او غذا میدهند و جریان تمامی ناپذیر هایش را به سمت شیرخوارگاه مجتمع هدایت کنند. اگر قرار باشد چنین ملکه قولاسایی از سلول سلطنتیش تغییر مکان دهد بعد یک ناوگان هوایی یعنی بر پشت کارگران زحمتکش سوار میشود در فصل هفتم، تمایز بین زادآوری و نگهداری را بیان کرد. گفتم معمولاً راهبردهای ترکیبی که مخلوطی از بچه آوری و نگهداری از آن هستند، تکامل پیدا می کنند. در فصل پنجم دیدیم که راهبردهای ترکیبی از نظر تکاملی پایدار را می توان در دو نوع کلی دست کرد. یا هر فرد آن جمعیت می تواند به صورت ترکیبی رفتار کند. بنابراین افراد معمولا به ترکیب سنجیده ای از بچه آوری و نگهداری آن می یا کل جمعیت به دو نوع متفاوت از افراد تقسیم می شود. به این ترتیب ما ابتدا تعادل بین اقابها و کبوترها را تصویر کردیم. بر اساس اصول نظری این امکان هست که در طریق دوم بین زادآوری و نگهداری به یک تعادل از نظر تکاملی پایدار رسید. جمعیت باید بین زایمده و نگهدارنده تقسیم شود. اما این فقط در صورتی از نظر تکاملی پایدار خواهد بود که نگهدارنده ها خیشان نزدیک نگهداشت شده ها باشند. آنقدر نزدیک که اگر خود نگهدارنده فرزند فرزن می داشتن به اون نزدیک می بودن. گرچه ممکن است بر اساس اصول نظری تکامل در این جهت پیشروی کند. اما از لحاظ نظری به نظر می رسد که فقط در حشرات اجتماعی این پدیده عملا رخ داده است. افراد حشرات اجتماعی به دو بخش و عمده تقسیم می شوند: زاینده ها و نگهدارندهها ها. زاینده ها نرها و ماده های تولید مثل کن هستند. نگهدارندهها ها کارگر هستند. نرها و ماده های ستروند در موریانه ها و ماده های ستروند در همه دیگر حشرات اجتماعی. هر دو نوع کارشان را به خوبی انجام می دهند. زیرا مجبور نیستند با دیگر مقابله کنند اما این خوبی از نظر چه کسی است این سوال در نظریه داروینی به این صورت بیان شده است به کارگران چه می‌رسد بعضی گفتن هیچ چیز آنها احساس می‌کنند ملکه در جهت اهداف خود پیش می‌رود و در این راه با ابزار شیمیایی کارگران را وامیدارد او را در رسیدن به اهداف خود خواهانش یاری کنند مجبورشان می‌کند از زاده‌های بسیار زیادش نگهداری کنند این یک روایت از نظری دستکاری والدین الکساندر است که در فصل هشتم دیدیم نظر مخالف این آن است که کارگرها زایندهها را پرورش می دهند و با این دستکاری زایندگی آنها را در پراکندن نسخه های از ژن کارگران بیشتر می کنند یقینا ماشین های بقایی که ملکه می سازد و بچه های کارگران نیستند اما با آنها خیشاوندی نزدیک دارند همیلتون حوشبندانه به این پیبرد که دست کم در مورچهها ها، های اصل، زنبور معمولی شاید در واقع کارگران از خود ملکه به بچه نزدیکتر باشند.